سوره سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكیم الخبیر بنام الله كه بخشایندهب با رحمت است ایش مخصوص خداوندیست است که آنچه در آسمان و زمین است از آن اوست ستایش در آخرت نیز از آن اوست و او حکیم و آگاه است آنچه در زمین فرو می رود، و آنچه از آن بیرون میآید و آنچه از آسمان فرود میآید و آنچه به آسمان بالا می رود، همه را می‌داند و او. با گذشت و آمرزنده است و کسانی که به حقایق کافر شدند گفتند روز قیامتی برای ما در کار نیست بگو آری به پروردگارم که آگاه از نادیده ها سوگند که قیامت شما را در بر خواهد گرفت بدانید که به قدر زرری چه کوچکتر از آن و چه بزرگتر از آن در آسمان و زمین از خدا مخفی نیست و همه در کتابی روشن نوشته شده است تا پاداش کسانی را که به حقایق ایمان آوردند و عمل کرد شایسته و نیکی داشتند عطا کنند زیرا برای آنها مغفرت و رزقی پرارزش است و کسانی که سعی در تخریب آیات ما داشتند و گمان کردند می توانند از حوزه قدرت ما بگریزند بیشک برای اینان اذابی بد و دردنات خواهد بود کسانی که به آنها دانش عطا شده است به خوبی می‌دانند آنچه از سوی پروردگارد به تو نازل شده حق است و به راه خدای قدرتمند و ستودنی راهنمایی نمایی می کند کسانی که به حقایق کافر شدند گفتند آیا می مردی را به شما نشان دهیم که ادعا می کند هنگامی که اجساد شما متلاشی شد دوباره همت هم زنده خواهید شد؟ آیا او پیامبر بر خدا دروغ می‌بندد یا دیوانه است؟ نه، بلکه کسانی که آخرت را باور ندارند در عذابند و در گمراهی سختی گرفتار آمدند آیا به آسمان و زمینی که روبرویشان و پشت سرشان قرار دارد نگاه نمی‌کنند تا عظمت هستی و آفرینش را دریابند؟ اگر ما بخواهیم آنها را در زمین فرو میبریم و یا پارهای از آسمان را بر سرشان فرود میآوریم و در این عبرتی برای هر بنده توبهكار خواهد بود ما از فضل خودمان فضیلتی را به داوود عطا کردیم و گفتیم ای كوهها و ای پرندگان با داوود همآواز شوید و تصویح مرا بگوییم همچنین آهن را برای او نرم کردیم با او گفتیم که ذره های کامل بساز و اندازه ها را رعایت کن و همه عمل کرد خوب و شایسته داشته باشید که من نسبت به عمل کردتان بینا هستم باد را در اختیار سلیمان قرار دادیم بادی که در هر صبحگاه به اندازه یک ماه مسافت تقیم کرد و همچنین در شبانگاه نیز به اندازه یک مسافت یک ماه راه می پیمید. و چشمه مثل مذاب را برای او جاری کردیم در حالی که گروهی از جنیان به ازن خداوند برایش کار می کردند. و اگر کسی از آنها از فرمان ما سرپیچی می کرد او را به آتش سوزان میچشندی آنها هرچه سلیمان می‌خواست برایش میساختند معبدها و مجسمه ها و کاسه چون و دیگهای بزرگ و ثابت و گفتیم ای خاندان داوود برای شکر نعمتهای الهی کاری کنید که تعداد اندکی از بندگان من شاکرند چون جانش را گرفتیم هیچ کس مردم را از مرگش آگاه نکرد مگر جنبنده زمین که اصایش را میخورد هنگامی که سلیمان بر زمین افتاد جنیان دریافتند اگر از غیب و نادیده ها مطلع بودند هرگز در عذاب خار کننده نمیماندند لقد کن لسبعیم فی مسکنهیم ورب در مسکن قوم سبع عبرتی وجود داشت دو باغ بزرگ و پرمیوه از راست و چپ احاطشان کرده بود گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکرگزار او باشید یک شهر پاکیزه و یک خدای آمرزنده دیگر چه میخواهید اما آنها از خدا رویگردان شدند ما نیز سیل ویرانگر را بر آنها فرستادید و دو باغ زیبا و پرمیوهشان را به دو باغ بیارزش با میبه های تلخ و درخچه شوره گز و اندکی درخت صدر تبدیل کردیم و این کیفر را به خاطر دستاورد کفرارودشان نصیبشان کردیم آیا جز کفران کنندگان امت ها را به این چنین مجازاتی میرسانیم و میان آنها و سرزمین هایی که با برکت کرده بودیم آبادی های آشکاری قرار دادیم و سفر میان آنها را به طور متناسب مقرر داشتیم در امنیت کامل می توانید شب و روز در میان این آبادیها تردد نمایید ولی آنها گفتند پروردگاه بین منزلگاه های ما فاصله بیندازد بدینسان به خود ظلم کردند و ما نیز آنها را در عبرتی برای دیگران قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی کردیم و در این ماجرا برای هر صبور شکرگزار، عبرت هاست. به انسان ابلیس گمان و بسفسه خود را در دلهایشان به یقین تبدیل کرد. و آنها بجز اندکی از اهل ایمان، همگی از او پیروی کردند. بدانید که ابلیس بر آنها سلطه نداشت. فقط ما میخواستیم کسانی آنی که آخرت را باور دارند، از آنهایی که در شک و تردیدند، مشخص نماییم. بدان که پروردگار تو، مراقب و حافظ همه چیز است. بگو همه معبودهایی را که به جای خدا میپنداش بخوانید. بخانید آنها حتی مالک زرگی در آسمان ها و زمین نیستند و در به وجود آوردن آسمان و زمین شرکت نداشتند و خدا نیز از میان آنها مساعد و پشتیبانی انتخاب نکرده است. هیچ شفاعتی نزد خداوند به جز به آنها که خود اذن داده است کارساز نخواهد بود هنگامی که استراب از دلهایشان برود به شفیان گوگند پروردگارتان چه گفت؟ گوگند سخن حق گفت فقط کسانی را که خدا بخواهد شفاعت میکنی و او بلند مرتبه بود بزرگ است بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میدهد؟ بگو الله. اینک ما و شما یا بر طریقه هدایتیم یا در گمراهی آشکار اگر ما جرمی مرتکب شده باشیم شما را معاخذه نمی کنند همچنان که اگر شما جرمی مرتکب شده باشید ما در برابر عمل شما بازخاص نمی شدیم بگو پروردگار من همه ما را گرد می‌آورد، سپس به حق میان ما داوری می کند. زیرا او داوری آگاه است. بگو شرکایی را که برای او قائل شدید نشانم دهید هرگز شریکی نداشته است بلکه او خدای قدرتمند و حکیم است ما تو را به پیامبری نفرستادیم مگر آنکه برای تمامی مردم جهان بشارت دهنده و هشدار دهنده باشیم. هرچند اکثر مردم درک نمی کنند و می گویند اگر راست گوید. این وعده قیامت کهی فرا می رسد؟ بگو وعده شما روزی است که وقتی فرا رسد نه ساعتی از آن تأخیر خواهید کرد و نه ساعتی جلوتر خواهید آمد کسانی که به کافر گشتهاند گوگند ما هرگز به این قرآن و به کتابهای آسمانی پیش از آن ایمان نمیآوریم اگر ببینی آن روز را که این ظالمان مزد پروردگارشان بازداشت شدهاند تعجب میکنی هر کدام از آنها گناهش را به گردن دیگری میاندازد مستضعفان رو به می میکنند و میگویند اگر شما نبودید ما از اهل ایمان بودیم و مستکبران رو به مستضعفان کنند و گویند آیا بعد از آن که شما را به راه حق دعوت کردند ما جلوی شما را گرفته بودیم نه، شما خود گناه کارید. و مستضعفان به مستكبران گوگند شما شبان روز فریبکاری می کردید آن هنگام که به ما امر می کردید تا به خدا کافر شدیم و برای شریکانی قائل گردید اما هنگامی که عذاب الهی را ببینند در دل پشیمان می شود و ما نیز قل و زنجیر را برگردن کافران می اندازید آیا؟ به غیر از دستاورد پلیدشان جزا میبینند ما هیچ حشداغ ای را به دیاری نفرستادیم مگر که ناز فرورده های آنجا گفتند ما نسبت به پیام هایی که به خاطر آن فرستاده شدید کافریم و ادامه دادند ما انوال و فرزندان بسیاری داریم و هیچ مجازاتی شامل حال ما نمیشود بگو این پروردگار من است که به هر که بخواهد روزی فراوان می‌دهد و یا برو تنگ می گیدد. اما اکثر مردم درک نمی کنند. نه انبالتان و نه فرزندانتان هیچ کدام مایه تقربتان به ما نمی شود. مگر آنان که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی مفید و شایسته داشته باشند پس بیچک آنها به پاس عمل پاداشی دو برابر خواهند داشت و آنها در غرفه بهشتی در امنیت کامل به خواهند بود آنان که در رد و تخریب آیات ما تلاش می کنند همشان گرفتار عذاب خواهند بود ربّي يمسط الرزق لمن يشاء من عباده به ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين دغو براستي پروردگار من هر کدام از بندگانش را که صلاح بداند روزی فراوان می‌دهد و یا برو تنگ می گیرد بدانید هر را انفاق کنید او عوضش را خواهد داد زیرا او بهترین روزی دهندگان است روزی که خدا همه آنها را گردآورد، به فرشتگان می‌گوید، آیا اینها بودند که شما را عبادت می گویند پاک و منذعی تو؟ تو سرپرست ما هستی نه آنها اینان جنیان را عبادت می کردند و به آنها ایمان داشتند امروز روزی است که هیچ کدامتان نمی توانید هیچ سود و زیانی به یک دیگر برسانید و به کسانی که ظلم کردند خواهیم گفت به خاطر حقایقی که تقضیب کردید عذاب آتش را بچشید بنگامی که آیات روشنگر و نجات بخش ما بر آنها خوانده شد، گویند این مرد میخواهد شما را از آن چه پدرانتان می‌پرستیدند باز دارد. و گفتند این قرآن جز یک دروغ بزرگ بافته شده چیز دیگری نیست. و اهل کفر هنگامی که حق را دیدند گفتند این فقط یک جادوی آشکار است. پیش از این ما هیچ کتاب آسمانی را به آنها ندادیم که آن را بخوانند تا با استناد به آن قرآن را تکزیب کنند همچنین قبل از تو هیچ ای را برایشان نفرستادیم کسان این که پیش از آنها زندگی می نیز پیامبران را تکزیب کردند اما اینها به یک دهم آنچه که به آنها دادیم هم نرسیدند با این حال پیامبران مرا تکزیب می تصور کن مجازات من نسبت به آنها چگونه بود بگو من شما را به یک چیز موعظه می کنم بان این که دو نفر دو نفر و یا تک تک برای درک حقایق الهی قیام کنید و سپس بیندیشید تا بفهمید این دوست شما هیچ گونه جنونی ندارد او برای شما فقط یک دهنده از نزول عذاب شدید الهی است بگو هر مزد و پاداشی که از شما خواستم ارزانی خودتان باد مزد من تنها بر عهده خداوند است و بدانید که او بر هر چیزی گواه است بگو این پروردگار من است که سخن حق را بر دل پیامبران خود میافکند. او دانای همه نادیده هاست بگو حق آمده است و باطل نمیتواند آغازگر چیزی باشد و نب بازگرداننده یان بگو اگر گمراه شدم به ضرر خود گمراه شدم و اگر به راه نجات هدایت یابم، به خاطر وحی است که پروردگارم به من نازل می کند زیرا او شنوا و بسیار نزدیک است الله, الله. اگر ببینی آن لحظه را که از فرط عذاب فریادشان بلند است به هیچ گریزگاهی ندارند تعجب می آنها را از مکان نزدیکی که برایشان قابل تصور نیست میگیرند. گویند گوگند حال به پیامبر ایمان آوردیم اما چگونه می از مسافتی دور به اون دسترسی رسی آنها قبلن او را انکار کرده بودند و دورا دور غایبانه به او تهمتهای عجیب میزدند. اکنون میان آنها و آن آرزوهایشان جدایی افتاده است. همینگونه با امثالشان پیچ از این رفتار گردید. زیرا همشان نسبت به حقاقیق در شک و تردید بودند. وَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عزیز کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و